سحیفه معرفت شرح دعای هفته هم سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه هشتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و آله تیبین الطاهرین المعسومین لا سی ما بقیت الله فی الارزین با توجه به دعای هفدهم از صحیفه سجادیه با هم این بحث و پی می گرفتیم که اگر ما بخواهیم رفتار و کردارمون به گونه ای باشد که هم خودمون در طول زندگی نادم و پشیمان نشویم گاهی وقتا اتفاق می افتد که ما وقتی به گذشته خود مراجعه می کنیم از برخی از اعمالمون پشیمانیم و میگوییم ای کاش که چنین نمیکردیم یا ای کاش اطلاعات لازم رو پیدا می کردیم و اعمالمون رو با دقت بیشتری انجام میدادیم. برای این منظور آنانی که خوب زیستن و خوب زیستن را میخواهند به دیگران بیاموزند عاقلانه است که از آنها درس بیاموزیم از جمله کتبی که در این رابطه از کسانی که خوب زیسته اند معصوم بوده اند خداوند آنها را تایید نموده کتاب صحیفه سجادیه است که به مناسبت های مختلف درس بندگی و عبودیت و شکل درست حرکت الی الله را به ما معرفی میکند دعای 17 را انتخاب کرده بودیم که امام علیه السلام از موثرترین عواملی که در درون ما شیطنت میکند به تعبیر قرآن و همچنین این دعا نزق شیطانی یعنی وسوسه ها و تحریکات شیطانی در درون و نفس ما ها که منشأ و مستر و سرچشمه میشود تا اوا حرکت های ما را انگونه جهت بدهد که شیطان میطلبد پس برای این منظور هم باید توجه پیدا کنیم که ما در معرض چنین دشمن خطرناکی قرار داریم هم باید بدانیم که نحوه مبارزه با این دشمن چگونه باید باشد تا این عامل ناپسند را از درونمون دور کنیم به عنوان مثال فرض کنید بنده میخواهم مسافرت کنم به یه منطقه ای بروم کسانی که مطلعن و اون منطقه رو از قبلن خوب شناخته‌اند به من خبر می‌دهند به عنوان مثال عرض می کنم در اون محوطه و فضایی که بناس دو روز پنج روز ده روز بمانی هوا خیلی آلوده است سرب بسیار زیادی دارد و اگر در اون فضا تنفس کنید این آثار سو را در ریه شما و وجود شما باقی میگذارد. این یک مرحله است که من آگاه می شوم در اون شرایطی که بناس به سر ببرم چه خطراتی وجود دارد اما مهمتر مرحله دوم است مرحله دوم این حال که با چنین خطری مواجهی چه باید بکنی؟ اگر بناس در محیط به سر ببری و چاره ای نیست پس باید این وسائل لازم را برای دفاع و خنسا کردن اون اثر سو با خود همراه داشته باشید همه ما انسان ها این معنا رو فهمیده ایم و میدانیم امام علیه السلام هم به ما توجه و تذکر می که شما در معرض خطر شیطان قرار دارید شیطان دشمن قسم خورده شماست و تمام تلاشش رو به کار می برد تا در شما نفوذ کند به تعبیری که ارز کردم نزقاتش را در ما مؤثر قرار بدهد ولی حال برای درفتادن با شیطان خونسا کردن اثر شیطان و از بین بردن اون کارهایی که شیطان می و میخواهد در ما انجام بدهد چه باید بکنیم؟ امام سجاد علیه السلام راهایی راههایی رو به ما نشون دادن که برخی رو تا کنون بحث کردیم رسیدیم به این عبارت بسیار عمیق و عظیم که بسیار هم جای بحث دارد و اکبت ها به دعو بنافی محبتک خاری ابلیس را ذلیل شدن و دور رندن و بی اثر کردن ابلیس را که با ماده کبته خدایا از تو می خواهم اکبت شیطان رو خار کنی شیطان رو حلاک کنی شیطان رو با این خاری و حلاکت در من بی تأثیر قرار بدی اما دوتا قید یکی دعوبه و یکی محبت که دعوبه رو عرض کردم اون تلاش خستگی ناپذیر که احیانا رنج و زحمتم دارد معنی کرده محبت رو داریم با هم بحث میکنیم گفتم محبت یا اگر معادلش رو در فارسی بخوایم به کار ببریم دل بستگی بزرگترین سرمایه ما انسانها که می تواند در چگونگی رفتار و حالات ما تأثیر بسیار به سزایی بگذارد دل ماست همونطوری که عقل یک عامل بسیار ارزنده و مهم است ولی خیلی وقتا شده عقل مطلبی را میفهمد، ولی چون دل با عقل همراه نیست اون مطالب عقل را نمیگذارد ضمانت اجرایی پیدا کند به عنوان مثال عقل میگوید میفهمم مشروبات الکلی مذر است ولی وقتی کسی دلداده مشروب الکلی شده دو جور عمل میکند یا توجیه میکند یعنی عقل را به استخدام خود در می آورد، طبق نظریه دل عقل فکر کند و نظر بدهد مثلا می میگوید حالا مشکلی نیست خیلی هم معلوم نیست زرر داشته باشه حالا میشه ضررش رو یه جوری از بین برد با این توجیهات غلط اقل به استخدام هوای نفس و دل آلوده در آمده است لذا اقل و دل ناروا با هم همراه شدن یا حتی اگر اقل را نتواند وادار کند که توجیه آن اون های خود باشد وسوسه دل انقدر بالا می رود که بر عقل قلبه می کند میگه گر گره چه میدانم دارد گرچه میفهمم این عمل برای من ناپسند است اما ما خیلی سود و منفعت رو نمیطلبیم عیبی نداره یعنی خواسته دل برای من اونقدر مهم است که تمام کارایی و قضاوت عقل را زیر پا میگذارم با وجودی که میدانم حق با عقله لذا این دلبستگی مهم است دل به چی داده شده حال وقتی انسان این معنا را میفهمد که دلوستگی مساویس با حب و محبت پس انسان باید کاری کند در این رابطه حبی و محبتی محبوبی را برگزیند که به اقتضای محبوب و رابطه محبتی به گونه ای عمل کند که منافات با عقل نداشته باشد همینطور شرعه من وقتی دل من به جایی رفت با عقل خود در می افتم. اگر دل من به جایی برود که ناپسند باشد و شر نپسندد طبیعتا با شرم در می افتم. اما اگر دل را در راستای عقل و شر به حرکت در آوردم این نکته است در این فراز دعای امام سجاد علیه السلام و که تقاضا دارم به این نکته انایت بکنید ببینید عقل من یه پزشک ممکنه بیس سال، سی سال زحمت کشیده خون دلها خورده بر مبنای عقل و علم کتاب می نویسد مشروبات الکلی مذر است دوخانیات مزر است فلان امر این ضررها را دارد و خود درس می گوید ولی چون دوست می دارد سیگار بکشد یا چون علاق و محبت پیدا کرده به اینکه مشروبات الکلی بنوشد تمام اون زحمات علمی و عقلی خود رو زیر پا می گذارد. در مسیر شرع هم همین طور است کسی ده سال و بیست سال تو مسیر شرع زحمت کشیده باشد ارزش شرع رو فهمیده باشد و خوبیه دستورات شرعی رو پی برده باشد ولی اگر دلش رو اصلاح نکرده باشد محبت غلط در دلش راه بیابد چه بسا؟ این محبت غلط که در دل راه یافته تمام اون آثار شرعی را خنسا کند یا به توجیه مسائل شرعی براید یا مسائل شرعی را زیر پا بگذارد اینجاست که باید به فکر اصلاح دل شد باید محبت را درست کرد پس حال وقتی ما دل داریم و دل هم بناس دلبر پیدا کند یعنی محبت پیدا کند آیا بهترین محبوب را اگر بخواهیم بشناسیم و دل رو به او بدیم که هر چیزی غیر از اوست در راستای او ببینیم انایت بکنید چرز میکنم وقتی ما شدیم محب مثلا فرض بفرمایید ایکس شد محبوب من هر چه غیر ایکسه چون محبوب من ایکس است و دل به ایکس ام هر چه غیر ایکس است در راستای ایکس میبینم حالا چه چیزی ارزش دارد چون این محبوبی شود که هرچه غیر اوست برای او باشد آیا در بینش مذهبی ما که با عقل هم اثبات می شود این غیر از خدا میتواند باشد؟ حالا امام سجاد علیه السلام در همون مناجات المحبین که فرازی شد جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم وقتی ادامه میدهند می, می رسند به اینجا. امام علیه السلام با خدا این گونه مناجات می کنن. یا قایت اعمال المحبین یا قایت اعمال ای منتهای مقصود محبین یعنی اگر محب محبوب محب می خواهد. اون منتها و سرانجام تو میتوانی باشی از که خب بکه خدای از تو میخوام دوستی خودت رو یه جوری بشم تو رو دوست داشته باشم و حب من یو حبک و اونایی که تو رو دوست دارن من اونا رو دوست داشته باشم و حب کل عمل یوسلونی الى قربک و هر عملی که مرا متصل میکند میرساند به قربتو اون عمل من دوست داشته باشم چرا نمازو دوست دارم؟ چون من به تو میرسونه چرا روزه رو دوست داشته دو باشم چون منو به تو میرسونه چرا از دروغ بدم بیاد چون منو از تو دور میکنه میگن پای سگ بوسید مجنون خلق گفتا این چه سود گفت که این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است وقتی رابطه محبت شد پای سگ را مجنون میبوسد از باب اینکه گاه گاهی کوی لیلی رفته است شما وقتی فرزندتون رو دوست دارید مدتی فرزندتون رو ندیده باشید لباس او را میبوسید عکس او را هی نگاه میکنید نوازش میکنید احیانا یه اشیای مخصوص به او که اگر تو خونه باقی منده باشه اونو خیلی محافظت میکنید چرا چون در ارتباط با محبوب شماست حالا اگر انسان خدا را دوست داشت محبوبش خدا شد به جهان رمضانم که جهان خوررمز وست عآشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست با یه نگرش دیگهای به هستی و این عالم نگاه میکنه لذا امام علیه السلام در مناجاتشون با پروردگار اینگونه ادامه میدهن و ان تجعلک احب الی مما سواک ای خدا از تو میخواهم این کمکم رو بکنی انت جعلکه که خودت رو برای من به گونه ای قرار بدی احب الیم علیم ما سواک از هرچی غیر محبوب تر تو باشی در نظر من اگر پول از تو محبوب تری اگر مقام از تو محبوب تری اگر عنوان از تو محبوب تری نه از هرچه وقتی به یک انسانی که در معرضی قرار میگیرد، احساس میکند، کند تکلیف و او شهادت است جانشو دوست داره ولی خدایی که این جان رو به او داده بیشتر دوست داره میگه اگر تکلیف من شهادت باشه لذا من حاضرم جانم رو در راه او بدم در جنگ آهود بود در مدینه شایعه پراکندن که پیغمبر خدا به شهادت رسید جمعیت سراسیمه به طرف اهد حرکت کرد حضرت زهرا سلام الله ها با تنی چند از زنان به طرف اهد میامدن شخصی در دامنه احد خانمی را دید شطوری دارد و سه جنازه روی شطور داره به طرف شهر میاره پرسید خانم چه خبر؟ گفت الحمدلله خیر است چون رسول خدا سالمن این شایعه بود گفتن اینی که رو شطوره چیه؟ گفت یکی جنازه شوهر من است یکی جنازه برادر من است یکی هم جنازه پسر من تن از نزدیکترین عزیزانش را در این جنگ از دست داده ولی چون پیغمبر را به خاطر خدا دوست دارد پیغمبر سالم است احساس خوشحالی و نشاط می کند لذا انسان اگر خدا را دوست داشت هر چه غیر خداست جان خود باشد مال خود باشد فرزند باشد اناوین باشد اگر در راستای خدا بود می‌خواهد اگر نبود نمیخواهد. حضرت ابراهیم خلیل رحمان مگر جان خود را دوست ندارد ولی آنگاه که دستور خدایی است که در مقابل این مشرکین و ملحدین بیستد کار به آنجا می‌رسد که می‌خوان ابراهیم خلیل رحمان را در آتش بندازند بسوزانند و از بین ببرند او جان خود را در مقابل محبوبی که از حق است چیزی نمیبینه میگه اگر میخواید منو بسوزونینم بسوزونید وقتی فرزندی خدا به او داده چون جناب اسماعیل با همه اون مقدماتی که میدانید کهانسال شده در دوران سالی خدا فرزندی به او داده ولی وقتی خدا میگوید باید او رو قربانی کنی با تمام وجود میگه آماده و کارد به گلوی فرزند میگذارد وقتی گوسفندان زیادی دارد شرایط تبلیغ حقیقت الهی و دین خدا نیاز دارد که گوسفندانش و مالش را در راه خدا بدهد با کمال میل حاضر میشود که ببخشد و انفاق کند این انسان میگوید انسلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین انگاه رابطه انسان با خدا رابطه محبت شد انسان می شود محب محبوب می شود خداوند و خالق وقتی محبوب خدا شد اینجا امید مطرح نیست اینجا خوف مطرح نیست اینجا به جهت اون شدت علاقه و رابطه حبی که بین او و حضرت حق برقراره این وادار میکند کوشایی کند کوشایی محبتی با هیچ کوشایی دیگر قابل مقایسه نیست باز از باب مثال ارز کنم اگر مثلا من در زمستان سردی که برف زیادی باریده و در جایی یک متر و دو متر برف رو هم انباشته شده به من بگن یه شیء قیمتی زیر این برف ها مثلا فرض کنید که پنهان شده است من به امید اینکه این منفعت گیرم بیاد هی hey, برفارو رو کنار میزنم تا به او برسم یک ساعت دو ساعت کار میکنم سرما منو تهدید میکنه دستام داره یخ میبنده برف زیادی هم باز داره میباره میگم خب من به خاطر منفعتی که میخوام گیر بیارم دارم جانم از دست میدم نمیارزه رها میکنم برمیگردم میام خونه ولی حالا اگر کسی خدایی نکرده محبوبش فرزندش زیر برف افتاده باشد. چون دوست داره فرزندش رو آیا اینجا فرار میکنه یا تا پای جان میسته؟ بهش میگن الان برف شدید شده است یخ میزنی میگه تا جان دارم دست بر نمیدارم تا محبوبم و از این زیر بیرون بیاورم. برم امام سجاد <تصفيق> امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعای هیدهم صحیفه سجادیه میگه خدایا به ما توفیقی بده اولا محبت تو را بفهمیم دعوبه در راه محبت را یعنی کوشش و جدیت و استادگی در راه محبت تو رو پیدا کنیم وقتی اینو پیدا کردیم باعث میشه که شیطان و همه عوامل شیطانی را دور بریزیم چون اون کسی که خدا را دوست میدارد آن چرا که خدا دوست می‌دارد، دوست می‌دارد. و آن چرا که خدا دوست داشت، اگر او دوست بدارد، حرکتش می‌شود حرکت خدایی. آن چرا که خدا دوست می‌دارد، شیطان و عوامل شیطانی دوست نمی‌دارند. اونچه چرا که شیطان و ابامل شیطانی دوست می‌دارند، خداوند دوست نمی‌دارد. لذا انسانی که محب خدا می‌شود، پس با شیطان نمی تواند دوست باشد، کسی که با شیطان بغض می برزد و با شیطان دشمنی می کند، سعی دارد خاسته او را کنار بزند، تا در راستای خواسته دشمن حرکت نکرده باشد پس اگر امام علیه السلام به من میاموزد خدایا به تو پناه میبرم از نزغات شیطان و از تو میخوام که شیطان رو خار کنی یعنی خدایا رابطه با تو پیدا کنم بگونه ای بشم که بتونم محب به تو بشم وقتی محب به تو شدم در دلم این دلبستگی و علاقه شدید نسبت به تو پیدا کنم تو را دوست دارم وقتی تو را دوست داشتم در اثر این دوستی تو آنانی که تو دوست نمیداری دوست ندارم لذا در این مناجات امام علیه السلام میگه اسالک که حبک که خدایا حب تو رو درخواست دارم و حب من یحبک و اونایی که تو رو دوست دارن رو دوست داشته باشم ما با چه کسانی می معاشرتمون با چه عده است؟ کسانی که خدا را دوست نمی وقتی تو جمع اونا مینشینیم، زمینه دشمنی با خدا برای ما فراهم می شود ولی وقتی توی مسجد می در یک جمع مذهبی مینشینم، در میان کسانی که عاشقان الهی در جمع اونها قرار می گیرم است که رابطه عشق با اون محبوب در من تقویت می شود یه وقتی شخصی محب به است اون محبوب اگر محبوب اون محب شد دیگه محبوب یکی دیگه نمیتونه بشه ولی اگر خداست محبوب هر که هست محبوب دیگران هم میتونه باشه. لذا من در جمعی قرار بگیرم محب به الهی هم. این رابطه حب به اونا با پروردگار در من این حالت رو ایجاد خواهد کرد راستی شده برای شما امتحان کنید کسانی که عاشق خدان کسانی که دلداده و محب به حضرت حقند ساعاتی با اینها خلوت کنید یه شعر می خانید از چشمانشون جاری می شود. سخن از خدا میگویید رنگ چهرهشون تغییر میکنه، وقتی زمزمه های الهی رو از زیر لب اونها می شنبید. اون کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و ایال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ و قص شما در یک محافلی شرکت کنید سخن از محبوب و معشوق و عشق حق و حب الهی به شکل صحیح، نه تحریفیش به میان آید این زمینه خب و عشق را فراهم می کند اگر به ما گفتند با کسانی بنشینید که نشست با اونها یاد معشوق و محبوب رو در دل شما زنده کند اینها از عواملی که حب و محبت صحیح رو ایجاد میکند باید سود جستن لذا بدانیم با دل دلمردگان نشستن دل دلمردگی میآورد یافتن دلزندگان و نشستن در جمع اونها دل را زنده میکند دل زنده محب به محبوب واقعی می شود با این حب هرچه غیر اوس دور می کند پس مجالسی که ما را به یاد خدا می شیطان را دور می کند ولی مجالسی که یاد خدا را می می باعث می شود که نزغات شیطان در دل ما راه پیدا کند این می شود بیان امام سجاد عليه صلات و سلام که خدای از تو می خواهم و اکبت ها به دعو به نافیم محبتک منو یاری کن کوشا باشم در راستای محبت تو تا با این کوشایی در مسیر محبت تو شیطان خار و زلیل شود و سلام علیکم